بباره اضافه دید یه از رو به جنگ اول رو به جای تیش دیگه که توی دی. که داری میگه اول اون به جای. تازا اضافه چرا چه جا من کشون من تا آخر به جایی که مورد نظری یعنی منطقاهای حاضر بابر اضافه این بابر دونن تل و اون تنوینا مما توزیف احزه کتور سینا اون تنوینا او سینا همارا تو که که بکنی؟ سرهمشون بکنیم که به از در ترکیلیش داشت اه زه تحکیب به و زمیر همونه چیده باید حضب کن جناباید حضب کن چید رو نونمی مفهول اه زه حضب را طلیب علیقه ارابه طلیب زمین باقلش که به نون میموره علیقه, علیقه به معنای تقبل بعدی یعنی هر کجا رو رو رو یه یه میدیم یقعا اون بعد بعد رو سر مقبولش معنام می کنیم همه الان اینجا می چی؟ حضب کن نونی را که واقع می شود بعد, بعد از اعراب نونی را که واقع می شود بعد, بعد از اعراب حضب کن یعنی اگه مثلا غلامان داشته باشید بخوایید احسابه کنید غلامان زیده می شود نونش چیه؟ نون اعراب هم او اعط میکنه تندیدن رو به جای مینن و همچنین تندید هست میشه نون ابتدای اعراب او تندیدن مم ما، مم ما شامل منظور متعلق به افزف یعنی حد كل نون را که بعد از اعراب میآید و تندین را از چه چیزی اخذ کنیم منبا توزیفو از آنچه که توزیفو اضافه میکنید کنین او را توزیفو به زمید انتفایدشه آهد سده چی شده از شدید توزیفو رو یعنی از آنچه که اضافه اشونی کنین نونی که اعراب رو درد از اعراب ما میشه یا تنویل رو از مثالش مثال رو که سینا مثال رو محتدار که تور سینا چیه؟ طبعش. الان تور اضافه شده به چی؟ به سینا اصلش بوده چی؟ توران تنمیل به حقام اضافه چی شده؟ نه. سینا آبوده تور سینا یا تور سینی درست دیگهش سینینه سینا ممنون بوده به قادر ضرورت شهر تبدیل به چی شده؟ محسوس شده شده سینا چخص؟ دست در ضرورت که ممنون تبدیل به محسوسی ببینید اینجا چند تا مطلب داره میشه. یکی دیگاه کنید نونی که واقع می شود بعد از احرام بوش بوش. نونی که واقع می شود بعد از اعراب نون بعد از اعراب واقع میشه، شود اعراب دریبش چیه علا اعراب از هرون یا چه اعراب <تصفيق> مجلوب شدن منفول شدن مجلوب شدن عبارت از از اعراب آیا این نون غلامان بعد از اعراب واقع شده یا بعد از علامت اعراب بعد از علامت به اعراب بابر شده علامت اعراب در غلامه چیه؟ علیب. در غلامه <تصفيق> یا یعنی اون علیف یا یا اعراب در اعراب مرتون شدن مرتون شدن،, شدن اما اون اون یا گروب به اعرابند علائم درسته؟ پس در واقعی در بوده نونن قدیب علامات به اعراقه نونی که واقع میشه بعد از علامتهای اعراق گروف اعراق دوسته مزاق افتاده مزاقونه ده جاش نشسته مثل بسقره بغریه یعنی چی بسقره بغریه همه یعنی اهل بغریه مثل جا عرب بویه یعنی چی جا عرب بویه یعنی جا عرب عمر رو رده رسول برده. مزاقه بوده مزاقه لجاش نوچه دو خم که داره ایگاه کنید او تنوینا یا حضر میکن تنوینا خب تندین هم بعد از چی باقی میشه بعد بگه تنوینا یدی حرکت به نه؟ به به به هر به احرافه نه احراف وجود احراف به برو احراف به حرکت تنبیم بعد از هر جای اعراق باقیه چه؟ این بخشان اون سنده چیه؟ اعراقه و تنبیم بعد از او باقیه شد همینطور سلیدن اینجا در واقع است که به قلیمه ما شده حضبی شده اینو شده اجازه حضبی سرش میگن چی؟ اجازه حضبی یعنی حضبی کنیم تا کلاف مختصر بشه چون با قراره اون محضوع چیه؟ اون اول دفته نونم تل اعرابه یعنی نونم تلیم حروف اعراب او تنگینم یعنی پر جدد اعرابه ها یا خرقات اعرابه ها نمی ما توضیح بگو امزه سینا چه محضوع دی ها؟ همه حجمت کار و دیدی شما اگر پنجاه بار این کتاب رو بخانید فقط عبارات ولی ندونید با شعر کار و شعر تبدیل به نصر کنید کنید اون از نابل های و عدیات امالی سیو وضا کوشش کنیم همین مقداری که علامن پیسه چهار درگه در موضوعی شهر بوتن این مقدار از هر رو خشنگ نمنده همیشه دیگه با این دماره و این دماره بایده بایده میگه تلل ای اینو مولا جلال میگه این وروف همونده یعنی چی؟ اون بعد از گروه به میاد بعد از خوبه اراغ نمیاد گروه او تنوین هم دیگه صفت درمونی رو نگه این گاش میگه و او تنوین یعنی حرکات به یا تنوینی که به دنباله حرکات به اراغ میاد از کنید دوتا حالا ببینید میگه تنوین ملحوظ هم او مقدر تنوین منفوز باشه یا بگیریم مقدر باشیم کلمات می دویدن گاهی بوقات چیه پس مثل گلاه همون اضافه می میگیم گلاه همون زینه گاهی بوقات کلماتی هستن که تنگیر بالت داشته باشن اما به خاطر غیر صرف بودن یا یعنی دیگر تنگیر درشون ظاهرا نیست مقدره مثل کلمه گراهی دراهم در صرفه اضافه شو بگیم دراهه اگر گفتن اینجا اضافه چی چی شد بده بگیم تنبین مقدم میگن چرا تنبین مقدم بگیم توی بداری ممکنه که هر کلمه باید با باید یکی از این تا چیز تمام بشه. یا با تنبین یا با الگان یا با نون تصمیه و جمع یا با اضافه اینجا که با اضافه داره تمام میشه تو در آهمو کرد قبلش با چی تمام شده بوده با نون تصمیل و جمع با حالتان قه و از با چی دمام شده باشه با تنبین حالا تنبینش به خاطر اسباب اصباب داخل نشده بوده در تنبین چیه تنبین وجود داره تنبیل علامت اسم علامت اسم قابل تبدیل و قابل حرف بگیریم درخی چی شد میگه تنبیلی باشه ملخوزن بگی تلفز شده باشه بود تنبیل. و مقدر چی؟ مقدر باشه مثل در از نتما از آن که اضافه اشوی می از میگیم چرا میگیم چرا باید یا این دو تا با هم سازداری نمید. همونی که داره داره که دو تا اسباب تمام شدن در یک کلمه جمع نمیشه و سالین و سالین اگر شما دقت فرمایید تنبین در آخر کلمه بیانگر چیه بیانگر اینه که این کلمه تمام شد ها یعنی دیگه ما بعدش به این متصل کلمه مستقلی است. علامت استقلال کلمه است. وقتی شما میگید چی؟ مثلا دریدون. خدا همون. اما اضافه چی رو به این که مزاقون الک دوباره این مزاقه. این مزاق اقتصاد اون مزاقون الکی در جایده. هنوز تمام میگید. نشده. بلکه مزاق با اون مزاقون نمیشه تنبین و نون عوضه تنبین رو تنبین و نون عوضه تنبین رو چه کرد؟ نگه داشت، اضافه هم کرد چون نگرداشت اونها مساقص با اطمان اضافه کردنشون مساقص با عدم اطمان نفس این دو تا قابل جمع ببینید نگرد در اندر اضافته طوق زیرا که اضافه اعلان می کنند حق و زنانی یعنی تشکه رو اشعار دارد اعلان می کنند به اضافه به اینجور جلیبه به ما بعدش منتصف شده و تمام زده تمام کنندهش مضاقریه به ما بعدشه و تنبینه ها توی جا اضافه است. و تنبینه و خلقه و تنبین و نهون عوضه تندید طلب زدند جانشینی زدند ها و تندیم و طلبه او و هو و اون حداوار است از هر دوری که بالا که بعد از فروغ به اراده می آید چی لو ازنال به انصار به و این دو تا قابل جمع ببین ها جمع جنب از و عدم جمعه نمیزه نمکان در شو. مثال, مثال کتور سینا مثال روی کتور سینا چیه؟ مثال اضافه مثل سینا پس اضافه در اصطلاح چی شد؟ اضافه در استقعه نسبت یافتن یک کلمه به کلمه ما مرده شد نه میده کلمه ما و یا میشه جزء تمام کننده میشه شد و اضافه دو تا چیز هست یا تفسیص و تعریف. یا تخلیم اگر اضافه معنی محبید تفسیص و تحریف از اضافه تفسیه محبید چیه اعضافه در دوغت به چه مرمزی؟ از میده؟ اعضاف و به چه مرمزی؟ به معنای امال مثلا ما میگیم اعضاف تو زهری ایلن خاده تو زهری بدم؟ به تو زهری یعنی تکیه دادم همان دادم خودم رو به میبانه معنی دقیق هم با این برابره که یک کلمه را تکیهش میبین به یک کلمه دیگر و کلمه دیگر تمام کنند بهش میشه حالا یا برای قرمیت و تفسیر یا برای مرم چطور سینا این مثال قروم چطور سینا مثال از برای تنگیری که تنگیری که تنگیری که تنگیری این مثال باید بکنیم تنگیری مردد و اولام مرد زیده این یعنی چه این مثال باید. نون تصنیه که چی شده؟ حذ شده ها. نون تصنیه که اضافه شده، حذف شده. برای جمعشان میدونید مثال؟ درستو؟ یک جمع با نون میآید و اضافه کنه دیگه کلمه کلمه دیگه. درستو؟ مثل مثلا زار بی زایین زارین درشو زارویچ اضافه شده به سری زاروی نذره مسائل مسلمون مسلمون مصرت که مصر چشوار باشه اگر نکره تلفظ بشه به معنای مدینه است تو یعنی داخل مدید نمتن بارد شدن به اما اگر مصر پای تختش قابل باشد باید بعد باید مسلمون مصرح. یعنی مسلمان کشور مصرح یا زارم زیده. چه رو بعدی مسانیه اجرور باقراب آتفه چون فیل قبلی چیه؟ اقزه فیله اینشایی اجرور هم اجرور یعنی اسم از سانیه. اسم کن؟ مجدورش کن چیه؟ نمیشه موضاقون اله همیشه و سانیه از سانیه بسید هم من اوی واقعا با, با, با آتفه است فیل بفه است است و که بایدش نهایندی خودمون یعنی کرده ونده نید کن نید کن من او بی نید کن من را یا بی را یعنی در تقدیر بگی من یا بی را درسته؟ ها. من مفهول ونده او بی عدد این من اسم هست برای من هر بجاره علم هست برای ازا اسم از تو میگه را ازا لم یست رو ایلا زمانی که لم یست رو سلامیت نداشته باشد ایلا زا لم یست رو کرد باید این جزای شهر به مدید میتونه شده؟ <إنش> یعنی در تقدیر بکیر مل یافی را زمانی که صلاحیت نباشه مگر همین تقدیر در مل یاف ساله و شایسته تقدیر مل یاف و اللامن خوزا و با بابا آتفه است باز انلامن مخبول است برای خوزا خوزا په زمیر انتر فاعلش و اون علف علف نون تحجید نون تحجید در حالت زفی تحجید به علف میشه در علم سر بردی ازروای بدونه ازره از به دونه تصمیه بوده، ازره بند که وقت کنیم بشه چی؟ و لامه خوزا و لام را هم دو یعنی اضافه به فرمیر لام باشد کجا نام و لامه خوزن لما سوا زنید کرد لما دلگه را و سوا یعنی استقرد و سوا زینک سوا رو به استقرد رو سلیه مصر. نقطه سر حالا ببینید چیه اون اگر رو مجرورش کنید خب مجرور چون حالا اگر رو مجرور کردیم چجور اضافه ما؟ دیگه اضافه سی جوره. یا اضافه بیانیه است. ون و من. اضافه بیانیگه است. و بیدازه. زمانی که نشوه مگر کنی من نبید. اضافه اضافه چی باشه؟ بیانیه مثل چی؟ مثل خاتم و فزته. خاتم و فزته یعنی چی؟ یعنی خاتم و من فزته. یا تو دوست سوره دروس ویی قوم از غاز و احلامه ویی وعدهشون به اون قاضی گفتن که از غاز و احلامه یعنی از نو از ارویا این رویا از غاز و احلامه از غاز و احلامه اضافه برایش میگم یعنی از غازون میان احلامه از غازی است دست قاضی است خوابای عن یا نه اضافه به چی بی چی؟ مثل چی؟ یا مثل ما اول کوز ما اول کوز یا نیشون ما اول فرکوز ون نامه خوزن ون نام رو هم بگیر لباس وازعی نکن برای هم چون که خیلی از این یعنی زرگیه و برانیه نباشد لامه نگاه کن بگیر ببین حالیت بگیر نشون ارتباط زرگیت هست اگر ارتباط بگیر بیانیت است نه. اگر این دو نبود دیگه اصلا نمیخواد تفرقه بریزید کنید مصاحب گذاونه لا رو به تعبیر چی می‌گین لام مثلا من مع ذیله مع الله مع و از اضافه تو موضوع اضافه باشه تعبیر چی باشه لام ان باشه به تعبیر لام موسی ذیله به <st> مبارده. مبارده. در و فقط با یعنی نگاه که یه جا نبود تقدیره نامون واسه بازن و دیگه و غلام این زیده و ثانیا و دومبی را و اول مذاکره و اون هم مذاکره نکند باشد اجرور مجوبت جازش بده به شکلی وجودی یعنی 100 درصد لازم باشه اجرال مجوبند به حرف مقدره حالا آقل جنر مضافنه نهی چیه؟ جنر اعرابه اثر ظاهر میشه در مضافنه نهیه یه محصر میخواد یه آمد میخواد که این اثر رو ایجاد ده میگه آمدش کیه بود؟ میگه آمدش حرف جنر مقدر هست نزد آقایی دل حرف مقدر این در مصمده با حرف مقدر مجرور شده نزده های مصمده و قریبه یه که مصمده قاربه که حرف جره مقدر جره شده اینه که دوی بوده فستانی هم خجنور بنده من اوپی ازالمی از دویه لازاکه و دامه خوزا نماس بازه بیگه این لام رو چکار کن در دیبه. یعنی همون مقدر عطب جهر چه کارش کرده؟ جلد. این قول مشهور است و قول جناب آنیست. و بدون مزاف این نسیبه بریم. و آمل جردهنده چیه؟ مزاف از نزدارهای سیبه بریم. یه خود مزاف جرده یعنی غلام به اصافه شده به سه. غلام زیده چه کارش کرده و به مزاق این در سیده دید. توی این دو تا قول عامل چیه؟ عامل آمل لبسیست مزاق و حرف جلل مقاید اما به اضافه این درم داشت و با اضافه جللش بده یعنی عامل معنی اضافه یعنی اضافه شدن نست در آقای چیلی بیدید؟ اخوش که عامل آمل است و عامل اضافهش کنی جرده جرد شد. معلوم. قول همفر قول است و قول مصنف است و نظرش اینه که حرف جر لدیتر است و اصلا عامل در جرده است. ما بکنیم جرد داده حرف جرد این چیه؟ بهتر و نیمکی یا آقل اتفاقی به کردیم که هر باشه گفتیم او این نظر آقای موسیقی اما قول دوبار که به اضافه مجبور شده باشه این قدیلتره اگر چه باست قول سی وقت قریست سی دلیل هم داره بر فرمتر خودش دلیل احمنش اینه که نویه زمین فقط متصل می شده آمل خودش زمیر متصل میشه به که با متصل یعنی از زمیر لا یکتصل و ایدان به آمل برید وقتی که شما می دید قلامو قلاموکر قلامی قلاموکر قلاموکر زمین به چی متصل شده به مزایر پس معلوم شده که چی آملی شده زمین خود تسل نمیشود مگر به آملش بس گراموی و گراموی گرامو کرد آمله از زمین آمله در جرد محلیش خوده بود این یک نظر یک دلیل دلیل دوم میگه موزاقون ایلیل که من همی اران هم اینو گفتم مضافونه لکه منزله تنوین است برای مضافونه لکه منزله چیه؟ تنوینه برای مضافونه همانطور که بین تنوین و ملون چیزی نمیتوالاق باسه بشهد همانطور که بین تنوین و اسم صاحب تنوین چیزی نمیتونه فاصله بشه، میتونه نه. یه چیزی بیاد بساطه تنبیم زیدون، بساطه دو و نون نون تنبیم یه چیزی کار کنه فاصله کنه، همچین چیزی معبود نیست همونطور که بین تنبیم و صاحب تنبیم چیزی فاصله نمیشه بین آنچه که نازل به منزله تنبیم است نیست با صاحبش چیزی نباید؟ بکید. میگه شما قبول دارید که مذاق نلای نازل به منزله تنبینه یا نه؟ وجود داره. بیم هم بتونی تنبین چهاربار تمام می‌کنه مذاق نلای هم کلمات آن تمام می‌کنه. مذاق نلای نازل به منزله تنبین. بی خبری که قبول کردی بسم الله. بین تنبین و زوال چیزی فاصله می‌کنه. بیم نه. پس باستان‌واریم بین مذاق نلایی که نازل به منزله تنبین نباید باشه. با آن مذاقش نباید چیزی این هم نظر گلی به دوبام آقای سیده بگه. قول مشبور قول حفل هست قول وقیق قول دوبام هست قول زدیف و غیر مشبور قول سرکوم هست چون معنوی رو در اضافه قبول نکردن زندگی که اخوش گفته عامل معنوی در اینجا عامل اضافه مثل عامل تباییت چون اخوش متقده که صفت مجروبه به تبدیلیت از عامل معنیلی چی که با عاملیت یعنی میگیم جاعنی میگه مؤمن منسلوب مدخوب هست به به عامل تبدیلیت میگه اضافه میگه خود تبدیلیت شما قبول بکیریم نگردیم آمل معنیلی در تبدیلیت حالا تو اومده اضافه داری رو داریم بهش کار اون پس در چون یک حرف جرد مخارد این یک بچی دارد چون حرف جرد قلیه ترین آمل است در جرد دادن لبا گفتی ما قلیه بکنم این یک حرف قول دو قول سرکون قول زعیدی بود که اضافه را در آمیل معنوی بودن قیاسه به چی کرد به تولیت کرد گفتیم تولیت رو نفذیرد حالا تو اضافه را هم درش قیاس میکنی آمده تا بیشتر روشتر یکی ابتدایت و دیگری آمده فرن مساعد دیگه دقیقی از این دوتا رو آمده و بودشون بود نمید من به میلی میگه دیگر سوی من رو بالا شما نمیدید الویانیت من در تقدیر به گلمن بیانیگر امیکان از مزافیو بحضا اگر مزاف چو باشه؟ بحضا مزافیده نهت باشه میکنیم مثلا یه اضافه از از یا آیا اضافه اضافه است؟ اضافه لامیگه هست یا زیده اضافه اضافه اضافه می کی اعلامیه و شما میگی میگه امکان المضاف بعد از اضافینه ها و یه دلیلی هست که بعد از و صح حرف اسم میگی علل و صحیح باشد ادغام یعنی حمل اسم مضاف الی رو بر یعنی صحیح باشد که مضاف الی را قبل قرار بدیم برای یعنی آیا صحیح است من بگم ها زهری یدو زیدون این دست زیده است، میشه بیدیم؟ قلطه فضی یدو زیده نقصد بگیم برای از این مزاقونی خودش است، اما نمیشه مزاقونی لعی خبر برای مزاق قرار بگیم ها زهری یدو زیدون ها زهری یدو زیدون قلط هست و صحیح باشد که اسم مزاقونی لعی را همده برد و این قید امثال ید و چی میشه؟ خالج میشه مثال میزنه درام کنید کذا غالبی شرم درام کنید این چنین مزنم کنید طبقا به جهت تلقیم کردن لبن به جهت کردن از آل افیسان را در حالی که داشته خارج میکرده به قید الاخیر با قید الاخیر اون قید الاخیر سحر اطلاق و اسمی حلق با که در خیل خارج میکرده نحوه یدو زیدن مانند یدو زیدن چرا؟ به دلیل که ید درسته بعض مضافون اما اطلاق اسم مضافون لعیده و مضاف سریعی یعنی از ارتباطشون بر ارتباط مبتلا خبری دو کنیم درسته؟ ممثلن حال دوم از مخرجن حال اول ممثلن حال حال دلوقت. قالت مزنده بیده این شرمه کار که حالت داره باید قاید طبعا محبوب لبید به ننمه خاتمو در که داشتیم مثال میزنیم به چی؟ به خاتمو خاتم آیا بعضی از فزده هست یا یعنی نیست به و به و اقسام در میار. یکی از چیزهایی که فزده برشتن یا چیه؟ خاتم از خاتم دردی از فیزه است و از طرفی آیا میشه بگم آزال خاتم و فزده یا نمیشه بگی میشه بگم آزال خاتم و فزده است. فزده, است. فزده است. این انگوشت چیه؟ درسته هم کردن فزده را بعد خاتم به نهر خاتم و فزده است. و صوب و قطبه. قطن پنبه صبح پیراهن باجه. پیراهن پنبه ای آیا میشه من بگم پیراهن پیراهن اضافه پیراهن پنبه ای رو بگم این پیراهن پنبه است میشه یا نمیشه 12 تا وجی قطن این پیراهن قطن حالا پنبه فقط صبح میشه یا چیز دیگر هم میشه خیلی چیزهای که از پنبه درست میشه یکیش چیه لباس صبح و بزنه. او ان به فی ان به رو فی اطفاست به جایی من یا تقدیر بگیر فی را ازال نمیست و الازا کرد زمانی که صداییت نباشه مگر همین تقدیره یعنی فقط زردیت بشه نه و بل مک رو لینه و لما مک رو یعنی مک رو کردن مستر ازیده کردن گیل کردنه شبان روز، لیل کردن شبان روز یعنی چی؟ یعنی لیل کردن مردم در شبان روز. جو مصدر اضافه شده به چی؟ به زمان خودش. مکمل کردن در شبان روز واقع میشه. نه از شبان روز. اضافه نشده به فارغ خودش. اضافه شده به چی؟ به زمان خودش. مکمل و یعنی مکرون به لیه من نماز یعنی مکرون ناس به لیه جوان نماز مکر مظلوم در چه اضافه اضافه چیه زدیگه است به تغییر فی اما سمانیش یه مثاله دیگه هم بیتونیش اضافه چی؟ مکانیش بگه چیه ماهول کوز ماهول کوز یعنی چی؟ یعنی ماهول کوز مکانی یا تو سورین جوسو داره که یا صاحبه یه سجمه یوسف برمی کرد اون دو تا یا صاحبه یه از سجمه ای صاحب این صاحبه یه از سجمه که اینطور یا یا یه بس, بس صاحب اضافه شده دید. یا یه میشه چی؟ صاحبه یه یعنی ای دو دوست من در زندان ای دو همراه من در زندان صاحب صاحبه این مفهولش یاره یاره متکلم صاحبه ایگر اون سجن ضربشه ضرب مکانشه این خیصه ای دو همراه من در زندان بزار سجن مکان اون صاحبه ای. اون صاحبانی در سجنه نه همراه سجنه اون سجن مفرولش بسید که همین همه از سجنه دیگه همه یه دیگه که صاحب به معنای ساکن باشه و به مابا سجنه باشه یا صاحبانی پس سجنه یعنی ساکنه اون را دیگه در بند مخد رو دیگه بندامه و نام رو بگید ببینید اینجا یه اشعاری به ذهن میاد در مورد من و گفتش چی گفت بنده به که رسیده میگه چی خدا آدم فکر میکنه که چی فکر میکنه یه مقداری این دوتا تا با هم برام داره حالا واحد به خدا بندامه بنده چنون میگه ولامه خوزا چنون میگه ولامن به میگه خوز اینجا تضمین کرده معنای چی رو معنای این رو و به خاطر قافی خوزا رو ده اون برداشت اضاف این طرف هم به خاطر قافیه گفته چی؟ خوزا لذا میگه ولامه خوزا نابین نه اومدنش نام تغییره این نابین نه رو میشه بگه حذف و به خاطر هر بگه هر کجا بخوان نشون بدن که یک بدی تغییر کرده معنای چه دیگر معنای این رو به شکل اول بردش ببینید این یعنی شما اگر مثلا سمع الله و مننه رو جایی ببینید یک عدیل بینید رو معنی کرده نمشه سمحل لا بو. لمن همه ده یعنی مستجیب انده این پشتش نوشته مستجیب انده اون شما هر بفردید که سمحل چه معنی هست؟ آمون با کرده خود معنای های عربه رو لذا این تضمین رو که کاسبه فهمونه با چی فهمونده؟ به گفت اون اولی کتاب هستش با با و با با هست. نه. به استاینو به استاینو است. با در و به استاینو و و نه استاینو به از که با رو از نزا باشت از تاییونو دارند یه وقتی این ریسه مستقیلن چاور بکنم چی؟ مخاطر از تاییونو کرده؟ از تاییونو دیگه بلا. من خواستم ناویان, ناویان, ناویان یا می من بله نمی ناویان لها یعنی ناویان یا در حالی که نیت کرده ببینید این نام را له واسه ما ذلیل برای هر چیزی که غیر از این بگوشه غیر از بیان و غیر از در له واسه ما ذلیل کرد نه قول خداو مسید چی بوده قول خداو مسید خدا گفت له دیگه درستو قولامو زیید حالا اضافه چه فایده ای داره میگه اگر مزاف به مزافونه در اضافه شده باشه و مزافونه در نکره باشه محیط چیه؟ تخصیص اگر اضافه شده باشه و مزافونه در معرفه باشه محیط تعریف علاقی شرطش کنه که اضافه اضافه چی باشه؟ معرفی باشه. یک و شرط دو اینه که مضاف از چیزهایی باشه که کسب تعریف بگیر میکنه. نه اینا مثلا نیست شیر اینجور جیزاقه ای اضافه بشه کس به تحریف بگید هر هازا الا بشرون مثلون اینا هازا الا بشرون بشرون مثلون مثلون سبت چیه بشر اضافه زده به نا اما کس به تحریف میگه وقت خصوص اولاً کلمه اول اگر اول و باشه یعنی به معنای اصبر باشه به معنای چی؟ اصبر وزن فیل دارد و وزمیگر میشه چی؟ فیل مزر. اما اگر اول عدد باشه به معناه افعال عدد این که بایدش میدن چی؟ از سانیه از سالسه اون موجه چیه؟ موسیقی نظامی که وخصوص افعال در مقادر یعنی تخصیص بده اولی را ما باما آتفه اخصوص و قائل اولا وخصوص اولا او از تعریف او اوی آتفه و قائل و از اولا اتعریف مقبول یا اعتاقون اون اولی را چی بشه اعتاقون تعریف را معرفه شدن را. معرفه بشه برد چی؟ ارده تحریف تعریف تحریفه به چیم؟ به نظیم به نظیم متعلقه به هرده اعدا کن به اون تحریف را به سبب اندازی تلاف به نظیم متعلقه به هرده تلافه و قائل قائلش آهده سله هم هست و مفعولش ضمیریه که در اول برمی‌گرده ضمیریه که اول برمی‌گرده و حذف یعنی اعطاء اولی را اعتیج از تعریف اعطاء به اولی معرفه شدن را به سبب آنچه که تل بکرد است او اولی را. به سبب به آن چکه درم کردن است او بگیم امولینا یعنی واقع شده بعد است امولینا به سبب اون چیزی که واقع شده از بعد از اولی یعنی به سبب بگیم مظ Talat انز rat اون چیزی که واقع شده بعد از امولی اماعت است از چیلی الMozah این جاید به جاید که انزی کردار رو مرا درفته که داشته مغزیگ Mark گفتیم شرطش چیه شرطش اینه که اضافه اضافه معنمی باشد یک و مضاف از چیزهایی باشه که از به دریم بکنه اولاً به تخصیص اولی را به ثانی که اول در واقعه ثانیه و مورد هم شده اول موضاف است سانی تخصیص به ولی رو به دوید. امکان نگیه اگر نگیه باشه. تخصیص یه یعنی چیه؟ تخصیص یعنی تقلیل را یه تقلیل چیه؟ شامل خیلی چیه دامیشه؟ زن، غلام من، غلام اما وقتی گفتیم غلام را دیگه شامل زن، و غیره باید که چیه؟ مرد است. اما اون مرد مشخص خلام هست که خلام او عدیل از تحریف یا اعتاق که اون تعریف را به لذیب به سبب همچی که تلم کرده هست واقع شده هست یعنی به سبب مضافی امکان معرفت اگر اون دوبومی یعنی امکان اون زمین کانه می به انوزین فلا به انوزین که مزاخونه نگی اگر اون مزاخونه نگی یعنی هلزین حلل اقلل اون که شده بعد از اول محرفتن چی باشه؟ محرفتن باشه و باقلش هم بینیمسید و این نمده این نمده کنه و این که نباشه مزاق متوقعا امکان معرفتن و این لم یک قومی علموزاق متوقعا به لفاق قبیل و شرفت که غلامو زیر مثل غلام زیر که معلوم معلوم میکنه. چه این غلام ماله چیز درست شد غلام و این مزاقه میده رو اضافه که در اضافه ما گفتیم که میگه به چند تا چیز باشه سه قول یکی قول در به چهرم یکی بود به مزاقه و یکی قول اضافه بود یک قول زعیب دیگری هم هست که بسیار بسیار زعیبه میگه به و عرب جرد مقدر هر یعنی به دو هر به و عرب این که خیلی که زعیبه چرا چون توابید میشه و معموله واحد. دو تا مثل یک معمولی درسته این قرده بسیار زعیبیه به عنوان قرده چهار من در اینجا باب اضافه از سختترین بابایی و حتی درز اینها باب اضافه رو به عنوان باب اضافه رو به باب بودمان سویه این در رضا بابا اضافه رو بکار کنید در اشان که برسیده به پر بابا اضافه شما همون بابا اضافه رو با ما بکار کنید با قاعدت رو به قول معروض را هر می